طلاق گرفتن بدون اور جایز نیست. طلاق گرفتن چیز بسیار زشت و بدی هست. اما اگر کسی اصلاً نمیتواند، اصلاً نمیتواند که اونجا زندگی بکند، و زندگی برای او بسیار سخت است، اصلا مرد نمیتونه تحمل بکند و میداند که حقوق هم دیگر رو پایمال میکنن و به ناشکری و کفر میرسند، در چنین حالی میتواند طلاق بگیرد. اما رای طلاقش خلع هست خول این از که مهری رو برگرداره، دارد رو پس بیدهد و چیزی بی آقا طلاق بگیره براباد و این هم در زمان نبی کریم صلی اللہ و سلم پیش اومده که حضرت جمیله رضی الله تعالی نها دختر عبدالله ابن و بی ابن سلور بود عبدالله ابن بن و بی ابن رئیس رئیست منافقین بود آن بچهها ها مخلص مومنین کاملین بودن دخترش کامل کاملی بود و پسرش هم مومن کاملی بود هر دو تا کامل بودم جمیله دختر ویسلا شوهرش تحمل نکرد گفت که این دونه میشه گفت که پیش نبی رسول الله من ناشکری نمی کنم. از اخلاق این آقا من شاکی نیستم از کارهای شاکی نیستم اما من تحمل نمی کنم نمیتونه تحملش کنم برای من سخت هست و اینی اکره الکفر بعد الاسلام و من هم کفر بعد از اینکه مسلمانوا شده ناپستان میکنم یعنی چه یعنی نمیخوام به خاطر که به این شاهن سر دارم دوباره کافر بشم دیگه نمیخوام این تنفق من به کفر برسانه کفر من دوست نداره این دو معنی داشت یعنی ایمانیشی بود اینقدر که من از زند خوشم نمیاد شاید به خاطر این کفر کشیده بشم یعنی چه مجبورم کفر بکن تا طلاقم بیوسته اینو من اما نمیتونم نبیتی فرمونم وقتی نبیتونی پس بده که پس میدم اون چیزها رو پس داد باقی رو پس داد و طلاق خودشو گرفت اما به این صورت بود و کسی تحمل نداشت جر و اکراهی دیست اما این بدانی اینکه با کسی در ارتباط باشه قبل از اینکه شوهری داره با کسی در ارتباط میشه که من تر حالا با هم دیگه توافق میکنه به هم دیگر درستان ازدواج بکنه این اینا آغاباد بخیر نمیشن یکیم پیدا کنه آغاباد بخیر میشه همون مرد اولین بدگومانش میشه اولین شاکی خودش شوهر دوم میشه چی میگه میگه بعد بد اونجا که از اونجا پیشون بودی خیانت کردی با من ارتبا داشتی شاید من لفت گم ارتبا داشته باشه اولین بدگمانش خودش شوهرش میشه این آغیانه تی دا دارد اما به هر حال اگر نمیتونسته هم دیگر تا جدا بیشه چی داخل صحیح بخاری آمده حضرت بریده شوهرش بود حضرت مغیست بریده کنیزی بود قانون این است که اگر کنیزی آزاد بشه و کنیز وقتی آزاد شد می تواند از همسرش جدا بشه اگر کنیز ازدواج کرده بود بعد اونو آزاد کردن بعد از آزادی می تواند طلاق خودشو بگیره این حقی کنیز است می گه خیار اطقی در اسطلاح علمیش یعنی اختر آزادی داره حالا بریده وقتی که آزاد شد فورا از این اختر استفاده کرد گفت من موغیسانا نمی من با زندگی نمیکنم رهایش کن موغیس رضی الله تعالی عنها آنو که خیلی عاشق و وابسته شیفتو فریفته همسر گرامی بود بریره یلی میگه داخل کوچو های مدینه گهری میگه آشف میری دنبال بریره و بریده جان قبول کن کو. گفت نه نمیخوام اسراء میگه گهری او فلان جن نه قبول, قبول نمیکنم روز نبی کریم صلی الله علیه و آله حضرت عباس به گفت نگاه کو عباس این مغیث نگاه چه محبتی نسبت اون داره و اون را چه تنفری نسبت داره این گیگی میکنه در کوچه مدینه و میگه نمیخوام نمیخوام آخر نبی کریم آمد پیش بریده کو بریده قبولش کن چرا قبول نمیکنی گفت یا رسول این امر هست امر هست یا مشوره هست تو گفت به لوتی صلاح یا دستوره؟ کو امر هست یا مشوره هست گفت نه مشوره هست گفت اگر مشوره هست من نمیخوام اگر عمر شما باشه رو چشمها میگذارم اما اگر مشوره هست من نمیخوام چون نمیتونه تحملش کنم نمیخوام که خیلی خبرو اسلام اجوار نکرده. پس اگر اینجوری شود دیگه اجوار بکراهی نیست اما زندگی ها دیگه ندارند